در دستورات دینی جاریم هفتهی ده دقیقه رو به قبرستان سر بزنید حالا عزیزانی که از دست رفتن انسان میره و پاتهه میکنه بعد یک گوشهی ای بشینه یک گوشهی بشینه لازم نیست به شرخیهی قبور رو به خونه حافظش کم بشه یک گوشهی بشینه نگاه کنه اونجا دیگه غنی و فقیر و زن و مرد و زیبا و بدگل و عالم مجاهل و, و همه هستن همه اونجا خوابیدن راحت اونجا دراز کشیدن دیگه همه اون بودهای اونشنانی اون فقر و پلاکت ها نمیدونم قناب و ثروت ها سیبایی و زشتی ها اینا همه تموم شده اونجا خوابیدن داره انا بکم لاحقون الله در زیارت اهل قبور داره که وقتی میخوایم بریم به زیارتشون ابتدا زیارت بکنین السلام علیکم یا اهل لا اله الا الله اله آخر در یه عبارتش هم داره که اینا بکم راهقون ما هم انقریبه به شما ملحق میشین مستحب هست که بره انسان و بر مزار مؤمنین حاضر بشه، این یاد مرکه آمال و آرزوهای طولانی رو کم میکنه. به دنبالش قفرت ها کم میشه.